سوره غافر بسم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. آمین. این کتاب نازل شده از جانب خداوند قدرتمند آگاه است. همان خدایی که بخشاینده گناهان است. توب پذیره است دارای عقوبت سخته است صاحب کرم و نعمت است هیچ معبودی او نیست و سرنوشت همه به سوگ او می شود هیچ کس در حقانیت آیات الهی مجادله نمی مگر کسانی که به حقایق کافر شدند مراقب باش جولان دادن آنان در شهرها و قدرت نماییشان باعث فری به تو نشوند قبل از آنها قوم نو و اقوام دیگری که بعداً آمدند حقایق را تکسیب کردند و هر امتی توطعه چید تا پیامبرشان را بگیرند و منظوی کنند و به وسیله باطل به مجادله برخواستند تا حق را از بین ببرند اما من گرفتار عذابشان کردم تصور کن عذاب من چگونه بود و این چونین فرمان عذاب الهی بر کسانی که به حقایق کافر شدند، تحقق یافت و همه آنها اهل آتش شدند. کسانی که حاملان عرش الهی‌اند و کسانی که گرداگرد آن تسبیح و ستایش پروردگارشان را می‌کنند و به او ایمان دارد کسانی که اهل ایمانند استغفار می کنند و می گویند پروردگارا تو که رحمت و علمت را در همه جا گسترده ای تو بکنم و کسانی را که به راه نجات بخش تو آمده اند ببخش و همشان را از عذاب جهنم حفظ فرما پروردگارا آنها را به بهشت های جاودانی که وعده داده ای داخل کن تنها آنها بلکه هر کوکاری از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان دانیز داخل کن زیرا تو قدرتمند و حکیمی و آنها را از ارتکاب بدیها حفظ نما زیرا هر کسی را که در آن روز از بدیها حفظ نمایی حقیقتا مشمول رحمتش قرار داده ای و این همان پیروزی بزرگ است آنهایی که نسبت به عقاوی کافر شدند ندا دهند که دشمنی خداوند نسبت به شما از دشمنی خودتان نسبت به خودتان بزرگتر است زیرا در دنیا به ایمان آوردن به حقایق دعوت شدید اما کفر برزیدید گویند پروردگارا تا به حال ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردید اکنون به گناهان من اعتراف دارید آیا راه خروجی برای من هست؟ این عذاب به خاطر آن است که وقتی خداوند به یک خوانده خانده می شما این حقیقت را انکار می کردید و اگر برای خداوند شریک قائل می شدند شما آن را باور می کردید اکنون حکم حکم خداست خدایی که بلند مرتبه و بزرگ است همان کسی که آیات و نشانه به حقش را نشانتان می‌دهد و برای شما از آسمان رزق و روزی می‌فرستند. با این همه هیچ کدام پند نمی‌گیرند. مگر آن کسی که روج سوی خدا آورد پس تا فرصت هست فقط خدا را بخوانید و دین خود را برای او خالص و ناب کنید هرچند منکران حقیقت از این کار شما خوشنود نباشند او درجات سالحان را ترفیع میدهد. او صاحب عشق و فرمانروایی مطلق است اوست که آن روح را به امر خویش بر هر کدام از بندگانش که صلاح بداند میافکند تا مردم را نسبت به روز ملاقات الهی حشدار دهد. روزی که همه آنان آشکار می شود و هیچ چیز آنها بر خداوند پوشیده نمی ماند. گفته می شود امروز حکومت از آن کیست؟ از آن خدای یکتا و, یک و قهار امروز هرکس نسبت به دستاوردش جزا می بیند امروز هیچ ظلمی وجود نخواهد داشت و خداوند سریعاً به تمامی حساب ها رسیدگی می کند نسبت به آن روز نزدیک آنها را حشدارده همان روزی که از شدت اندوه و اضطراب قلب ها به گلوگاه می رسد. در این هنگام ظالمان نه دوست سمیمی خواهند داشت و نه شفیعی که شفاعتش پذیرفته گردند او نه تنها چشمهای خیانت پیش را می بلکه از آن که درون سینه هاست آگاه است. خداوند به حق قضاوت می کند. اما آن کسان که به جای خدا میخوانید هیچ قضاوت ندانند و نتوانند زیرا این خداست که هم میشنود و هم میبیند. آیا در زمین سیر نمی کنند تا ببینند سرنوشت کسانی که قبل از آنها زندگی می کردند چگونه بوده است؟ آنها نیرومند تر از اینان بودند حتی آثاری که در زمین به جای گذاشتند بیشتر از اینان بود اما خداوند به خاطر گناهانشان همه را گرفتار عذاب کرد به طوری که هیچ کس در برابر این مجازات الهی نگه آنها نبود این عذاب به خاطر آن بود که پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند اما آنها حقایق را انکار کردند و خدا نیز همه آنها را فرو گرفت زیرا او قدرتمند و عقوبتش سخت و طاقت فرساست. ما موسی را با آیات و دلیل آشکار فرستادیم به سوی فرعون و هامان و قارون اما آنها در جواب گفتند موسی جادوگری دروغ گوست هنگامی که از جانب ما حق به سراغشم آمد گفتند پسران کسانی را که به موسی ایمان آوردهاند بکشید و زنانشان را زنده نگاه دارید بدانید نقشه و فریب کافران جز در گمراهی نیست و فرعون گفت بگذارید موسا را بکشم تا او خدایش را بیاری به طلبت من از این می ترسم که موسا دین شما را به چیز دیگری تبدیل کنن و یا اینکه در این سرزمین فساد و تباهی به راه بیاندازد موسا گفت من از دست هر متکبری که به روز قیامت ایمان ندارد به پروردگار خودم به شما پناه میبرم. و مرد مؤمنی از خاندان فرعون که ایمانش را پنهان داشته بود گفت آیا می خواهید مردی را بکشید که فقط میگوید پروردگار من الله هست؟ در حالی که از جانب پروردگارتان دلایل روشن نیز آورده است بدانید که اگر او دروغ گفته باشد دروغش به زیان خودش است و چنان که راست بگوید شما دچار پاری از عذابهایی که وعده داده است خواهید شد بدانید که خداوند هیچ گذافکار دروغگویی را هدایت نمی کند ای قوم من امروز حکومت از آن شماست و شما فرمان روای این سرزمین هستید اما بگویید ببینم اگر خشم و غضب خداوند بیاید چه کسی ما را در برابر آن یاری می کند فرعون گفت آن چرا به نظرم میآید به شما می و مطمئن باشید شما را فقط به راه پیروزی و موفقیت راهنمایی خواهم کرد آن مرد مؤمن گفت ای قوم من می ترسم مثل آنچه بر سر اقوام منغرست شده آمد بر سر شما نیز بیاید همانند قوم نوح و عاد و سمود و اقوامی که بعد از آنها آمدند حالان که خداوند بر بندگانش زول نمی‌خواهد. ای قوم من از آن روزی که یک دیگر را به فریاد رسید خانید بیمناکند آن روز که روی می‌گردانید و فرار می‌کنید در حالی که هیچ کس شما را در برابر عزاد خداوند حفاظت نخواهد کرد بدانید هر کس را خداوند در گمراهی گذارد دیگر هیچ راهنمایی نخواهد داشت قبلا نیز یوسف با دلایل روشنی به سوی شما آمده بود اما پیوسته در مورد حقایقی که به سراغتان می آمد در شک و تردید بودید تا اینکه که یوسف مرد و ادعا کردید که دیگر هرگز خداوند پیامبری بعد از اون نمی فرستد بدانید که خداوند چنین هر شک کننده و هدردهنده نعمتی را در گمراهی میگذارد. گذارد کسانی که بدون دلیل در آیات الهی مجادله می کنند نزد خداوند و نزد اهل ایمان گناه بزرگی را مرتکب می و خداوند این چنین بل به هر متکبر جباری را از درک حقیقت عاجز می کند فرعون گفت ای هامان برج بلندی برایم بساز شاید به نیروی دست یابن نیروی آسمان ها تا از خدای موسا اطلاع حاصل کنند هرچند گمان می موسی دروغگو باشد. بد دینسان اعمال بد فرعون در نظرش زیبا جلوه شد و او را از پذیرش راه حق منحرف کرد بدانید که توطئه فرعون جز به نابودی نمی انجامد آن مرد مؤمن گفت ای قوم من از من تبعیت کنید تا شما را به راه رشد و موفقتیت راهنمایی کنم ای قوم من زندگی این دنیا فقط متاعی اندک و چند روزه است. حالان که آخرت سرای زندگی پایدار است. بدانید هر کس کار بدی مرتکب شود فقط به اندازه همان جزا میبیند اما هر مرد یا زن با ایمانی که کار خوب و ای انجام دهد، بیشک وارد بهشت خواهد شد. و در آنجا بی‌حساب رزق و روزی می شود ای قوم من، چگونه است که من شما را به راه نجات میخوانم اما شما مرا به آتش فرا میخوانید مرا دعوت میکنید تا به خداوند بزرگ کفر ببرزم و چیزی را که از آن آگاهی ندارم شریکش سازم حالان که من شما را به سوی خدای قدرتمند و بخشاینده دعوت میکنم مسلما آنچه که مرا بدان دان میخوانید هیچ حاکمیتی در دنیا و آخرت ندارد بدانید که بازگشت ما فقط به سوی خداست و قطعا هدردهندگان نعمات الهی در آتش دوزخاند فستوكرون ما أقول لكم وافوض أمری الی الله ان الله بصیر بالعباد بزودی را که به شما به بیاد خواهید داورد من کار خود را به خداوند بزرگ با میگذارم زیرا خداوند نسبت به بندگانش بیناست به خداوند او را از نقشه پلیدی که برایش کشیده بودند حفظ نمود و فرعونیان را از عذاب سختی فرا گرفت آنها هر صبح و شام در معرض آتش قرار میگیرند بر روزی که قیامت برپا شود نداده دهند که فرعونیان را به عذاب سختی درآورید هنگامی که در آتش دوزخ با هم مجادله می کنند زعفا به مستکبران گوگند ما در دنیا پیرو شما بودیم آیا امروز می توانید اندکی از این آتشی را که نصیب ما شده است برطرف نمایید مستکبران گوگند چگونه همه ما در آن شده شده‌ای و این خداوند است که میان بندگانش قضاوت کرده است و کاری از ما برنمیآید کسانی که در آتش دوزخ هستند به نگهبانان آنجا گویند از پروردگارتان بخواهید لاقل یک روز از عذاب ما بكاهد آنها جواب دهند آیا پیامبرانتان با دلایل روشن به سویتان نیامدند گویند آری جواب دهند پس خودتان دعا کنید اما دعای کافران بینتیجه و پوچ است ما پیانبران و اهل ایمان را هم در زندگی دنیا و هم در روزی که گواهان برمیخیزند یاری میکنیم روزی که ازخاقی ظالمان هیچ سودی برایشان نخواهد داشت و نصیب آنها نفرین است و سرای بد ما به موسا هدایت عطا کردیم و بنی اسرائیل را وارسان کتاب الهی قرار دادی کتابی که سراسر هدایت است و برای خردمندان پنداموز پس صبر کن قطعا بعده خداوند حق است و از گناهت استغفار کن و ار صبح و شام و ستایش پروردگارت را بگو. اشانی که بدون هیچ دلیل آسمانی در حقانیت آیات الهی مجادله می کنند، در سینه‌هایشان جز اغده رسیدن به بزرگی نیست اما هرگز به بزرگی نخواهند رسید بس به خدا پناه ببر که او شنواغ و پیناست آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش مردم از این است اما اکثر مردم درک نمی کنند. بدانید نابینا با پینا برابر نیست همچنان که اهل ایمان و عمل ساله با شخص گناکار یکسان نیست اندک پند میپذیرید. روز قیامت آمدنیست و هیچ شکی در وجود آن نیست هرچند اکثر مردم باور نمی کنند وقال ربکم دعونی استجب لكم. و پروردگارتان گفت مرا بخوانید، تا شما را اجابت کنند بدانید کسانی که از عبادت من تکبر میورزند به زودی خار و زلیل وارد جهنم خواهند شد این خداست که شب را برای شما مایه آرامش و آسایش قرار داد و روز را روشنایی بخشید خداوند بر همه مردم فضل و کرم خیش را ارزانی کرده است اما اکثر مردم شوق گذار های الهی نیستند این چونین است خدایی که پروردگار شماست خاله همه چیز است و هیچ معبودی جزو نیست پس چگونه شما را از حق منحرفتان میکنند؟ کسانی که آیات الهی را انکار میکنند از حقایق روی برگرداندند این خداست زمین را قرارگاه اند شما قرار داد و آسمان را برافراشت و به بهترین وجه شما را صورتگری کرد و از نعمتهای پاکیزه روزیتان داد. این چونین است خدایی که پروردگار شماست. با برکت است خدایی که پروردگار جهانیان است. والحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين منذ که هیچ معبودی جز نیست فقط او را بخونید و دین خود را برای او خالص ناوب کنید که ستایشش فقط مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است بگو من نه شدم آن کسانی را که شما به جای خدا می‌خوانید بپرستم حالانکه که از جانب پروردگارم برایم دلائل روشنی آمده است و من مأمور شدم تا سراپا تسلیم پروردگار جهانیان باشم او کسی است که شما را از خاک آفرید سپس از نطفه سپس از علقه لخت خون و سرانجام شما را چون طفلی از شکم مادرانتان خارج نمود تا به مرحله رشد و قوت رسیدید بعد از آن پیر می شوید و گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می میرند به هر کس از شما عمر مقدرش را خواهد کرد امید آنکه نسبت به این نکات تعقل کنید هو الَّذی يحيي فإذا قضا فإنما يقول له كن فيكون. او کسی است که زنده می کند و می, می رامد و اگر اراده برکاری کند فقط میگوید موجود شو و بیدرنگ موجود می شود. آیا نمیبینی آنهایی که در آیات و نشانه الهی مجادله می کنند، چگونه از راه حقیقت منحرف می همان کسانی که کتاب آسمانی و آیاتی را که به پیامبرمان نازل کرده این تکزیب می کنند. همه آنها به زودی حقایق را خواهند دانست. آنگاه که قلها را به گردنشان اندازند و آنها را با زنجیرها بکشانند ابتدا در آب سوزان؟ و سپس در آتش گداخته گردند آنگاه به آنها گفته شود کجایند شریکانی که برای خدا قائل می شدید همان خدایان دروغینی که به جای خداوند بزرگ پرستش می کردید. گویند آنها از جلوی چشم ناپدید شدند گویی اصلا قبل از این چیزی را پرستش نمی اینچنین این چونین خداوند کافران را در گمراهی می گذارد. این به خاطر آن است که به ناحق در زمین خوشحالی می کردید و در ناز و تکبر غرق بودید از درهای جهنم داخل شوید و در آن جاافانه بمانید و جایگاه متکبران چه جایگاه بدی است پس صبر کن قطعا وعده خداوند حق است. چه پاره از عذابی را که به آنها وعده دادهم در زمان حیاتت به تو نشان دهیم، و چه قبل از آن تو را از دنیا ببریم به هر حال همشان به سوی ما باز می گردند. قبل از تو پیامبرانی را به رسالت فرستادیم سرگذشت برخی از آنها را برایت حکایت کردیم و ماجرای برخی دیگرشان را برایت حکایت نکردیم بدون که سزاوار هیچ پیامبری نیست که آبه یا معجزهی بیاورد مگر به ازن خدا بنابراین چون فرمان خدا فرا رسد به حق قضاوت می‌گردد و در چنین جایی اهل باطل زیان خواهند دید این خداست که چهار پایان را برای شما آفرید تا بر بعضی سوار شوید و از گوشت بعضی بخورید در وجود آنها برای شما منافعی است تا به واسطه آنها به حاجاتی که در دل خود دارید برسید حالانکه که هم بر آنها و هم بر کشتی‌ها سوار می‌شویید خداوند آیات و نشانه را به شما نشان میدهد. پس کدامین آیاتش را انکار می آیا در زمین سیر نمی کنند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنها زندگی می چگونه بوده است؟ آنها هم نیرومن از اینان بودند و هم آثاری که در زمین به جای گذاشتند بیشتر بوده است اما دستاوردشان باعث نجاتشان نشد. چون پیامبرانشان با دلائل روشن به سراغشان آمدند به دانش و علم خودشان دلخوش بودند و رسالت پیامبران را مسخره می کردند تا اینکه هر را که تمسخر میکردند کردند نمود و چون مجازات ما را دیدند گفتند به خدای یکتا ایمان آوردیم و چیزهایی را که شریک خدا می پنداشتیم انکار می کنیم. اما حال که عذاب ما را دیدند این ایمان آوردن به حالشان سودی نخواهد داشت این سنت و قانون الهی است که از قبل نیز در مورد بندگانش جاری بوده است و بیشکل در چون جایی کافران زیان بینند فلم یکو ایمانهم سنا سن ان التي في وخسر هنالك گفت خداوند بلند مرتبه بود قرآنی پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم